الا بستان سوم ژوئن 2008 انتظارش را نداشت در اولین روزهای های چنان اتفاقاتی افتاد که برای روبرو شدن با هیچ کدام آماده نبود به خصوص برای پیدا کردن مرده سایه در آشپزخانه با آنکه میدانست سگش پیر شده و امروز و فرداست که عجلش برسد از دست دادن موجودی که مدت زیادی نزدیکترین دوستش در خانه به شمار میرفت الا را عمیقا تکان داد پشت سرش از مدیر مدرسه اورلی نامه‌ای به دستش رسید در نامه نوشته شده بود دخترش در بحران جوانی به سر می برد. و بهتر است روانشناس معاینه اش کند نگو در کلاس همه متوجه وضعیت شده بودند الا این خبر را که شنید احساس گناه عمیقی کرد چطور نفهمیده بود وضعیت فرزندش بحرانی است چرا دیر متوجه واقعیت های دور و برش میشد؟ شاید احساس گناه برای الله چیز جدیدی نبود چیز جدید این بود که حس میکرد در وظایف مادریش کوتاهی کرده به مادر بودنش شک کرده بود. در عرض این مدت رد و بدل کردن ایمیل با عزیز زهارا رفته رفته روزانه شده بود. روزی دو سه حتی گاه پنج شش نامه برای یکدیگر دیگر می نوشتند. هر موضوعی که به فکرش می رسید یا ذهنش را مشغول می کرد برای عزیز می‌نوشت. او هم فوری جواب می‌داد. برای الا معمایی شده بود که چطور با آن همه سیاحت و رفت آمد به دور جاهای دنیا ارتباطش با اینترنت قطع نمی شود بیان که خودش متوجه شود به کلمه های عزیز معتاد شده بود دیگر در هر فرصتی ایمیل هایش را چک می کرد صبح به محض بیدار شدن بعد از صبحانه پس از برگشتن از پیاده روی صبحگاهی، موقع پختن نهار پیش از بیرون رفتن حتی توی خیابان موقع خرید وارد کافینت میشد و به صندوق پست الکترونیکیش نگاهی میانداخت موقع تماشای سریال محبوبش موقع خرد کردن گوجه فرنگی در به آشپزی فوزیون موقع مکالمی تلفنی با همسایههایش حتی موقع گوش دادن به قرقرهای دوقلوها در مورد مدرسه و تکالیف شب، لبتابش همیشه کنارش بود و صندوق ایمیل همیشه باز بود. مواقعی که ایمیل جدیدی از عزیز نرسیده بود، قبلیها را از نو خاند و مواقعی که ایمیل جدید از عزیز رسیده بود، مثل اشاق دبیرستانی، نمی جلو هیجانش را بگیرد چون دیگر می دانست که این نام از دوستی معصومانه فراتر رفته است نام با عزیز هرچه بیشتر می شد الا حس می کرد از حالت سربراه و مطیع همیشگیش دور می شود. به زندگیش که به بوم نقاشی پر از رنگ‌های بجو بژ و خاکستری میمانست، این روزها رنگی جاندار اضافه میشد. بنفشی نفشی برراغ و درخشنده حتی جیغ. از این رنگ پرهیز میکرد، اما غیر ممکن بود دست خوش جاذبهش نشود. خودش این را میدانست. عزیز مردی نبود که در نامههایش آسمان و ریسمان به هم ببافد. هر کس دلش را راهنمای خودش نکرده بود، هر کس تسلیم عشق نشده بود، در نظر عزیز فرقی با نباتات نداشت. عزیز همین طوری نمی نوشت که چیزی نوشته باشد. در نامههایش همیشه نوعی دقدقه بود. درباره مسائل بنیادی می‌نوشت، درباره در باره مرگ و زندگی، ایمان و فلسفه، و نیز درباره عشق. الا هرچند عادت نداشت در همچه موضوعهای پیشیده ای نظر کند، عقیده را برای ظاهرا می‌نوشت. اگر در جایی از این ارتباط نوعی معاشقه پنهان بود که بود، الا باور داشت که معاشقی بیزرر است از دو گوشه جداگانه هزار توی به نام فضای مجازی به هم دیگر اظهار محبت کردن چه ایرادی ممکن بود داشته باشد این طوری می توانست اعتماد به نفسش را که طی زندگی زناشویی از دست داده بود دوباره به دست آورد از طرف دیگر شاید عزیز هم قرورش ارزا شد از اینکه میدید زن آمریکایی میانسال و متأهل و نسبتاً متمولی به او توجه نشان میدهد. اما او به هر حال از آن مردهای کمیاب بود از آن مردها نبود که به محض این که میفهمند زنی به آنها علاقمند است هوا برشان میدارد و به گرگ تبدیل می شوند الا وجدانش معذب بود از اینکه با داشتن شوهر و چندتا بچه صبح تا شب با مردی غریبه ایمیل رد و بدل می کند اما به هر حال این رابطه همیشه افلاتونی می ماد گناهی معصومانه بود خطایی معصومانه